بلبلد شاخ سرب به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نقطه توحید بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگوی تا خاجه میخورد به غزلهای پهلوی. خوش وقت بوریای گدائی و خواب امن کنعش نیست روزی اورنگ خسروی جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد زنهار دلمبند در اسباب دنیوی این غصه عجب و از بخت باجگون ما را بکشت یار به انفاس ای سبیر. چشمت به اشبه خانه مردم خراب کرد مخموریت ما بود که خوشمست می‌یروی دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که نور چشم من به جز از کشته ندرمی ساقیم اگر وظیفه حافظ زیاده دار کاشفته گشت تره دستار مولوی یک بیتم که اینطور نیست اون دلسه به استاد صحبت میکردیم با می خونم چون تو حافظ قصیه قدیم بود میخور به شعر بنده که دلتنگیت مباد بعد از تو خاک بر سر اسباب دنیای دنیا. بله ارز کنم که چون قرار رسید دایی بنده امینا ضعب بشه بنده یتون میخونم قذلور بعد هم شروع میکنیم به بول بول زشاخ سر به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی یعنی بیا که آتش موسان و مو گل تا از درخت نکته توحید بشنیم. مرغان باب قافیه جمعد و بلگووی تا خارج میخورد به قذل های پهلوی خوشبخت بوریای گدائی و خواب اهم این عیش نیست روزی اورنگ خسروبی جمشید جز حکایت جام از جهان نبود زنهار دلمبن در اسفاب دنیا دی. این قصه عجب شنو از بخت واجدون ما را به یار به انفاس این سویی چشمت به اشته خانه مردم خراب کرد مخموریت مباب که خوشم هست میگوید به خان سال پرده چه خوش و با پسر که این نور چشم من بجز از کشته ندردید ساقیم اگر وظیفه حافظ زیاده داد کاشفته گشت بره دستار مغلبی ارز کنم که اینجا دوتا کلمه پهلاوی اومده یکی در مصرا اول بر یکی در مصرا دومه بیت سه یکی گولبانگ پهلاویه یکی قزل های در روزگاری که سعدی و حافظ این شعرهای این قشنگی رو در شیراز میگفتن خودشون به این زبون حرف نمیزدن خودشون به زبونی حرف میزدن که کم و بیش نزدیک لحجه لوری بود و بهش میگفتن پهلدی و البته این پهلدی و اصلاً پهلوی اسم یک سلسله زبان هاست فکر نکنید که تونه زبان از جمله زبان های ای که در دست داریم یکی پهلوی مانویه، یکی پهلوی اشکانیه، یکی هم پهلوی ساسانیه که اینا با هم فرقای زیادی هم دارن پرداد این زبانی هم که حرف می زدن در دوره حافظ و سعدی در شیراز و در بسیار جاهای دیگه ایران بهش میگفتن حالدی در زمن تمام ترانه های روستایی که در بحر حزج مسدس مخصور هست مفایلون مفایلون مفایل تمام اینا رو بهش میگن بیت پهلدی و خیلی شگفته که تمام زبونهای محلی بدون استثناء از مازندرون تا بندر گناوه شعبه محلیشون به این وزنه از جمله ترانهای بابتاهه که هست و زیب زید زی نسبتاً قدیم و بعد خود سعدی و خود حافظم وقتی که خواستن شعر پهلوی که ندارن درسته یعنی تمامش پهلوی باشه ولی شعر دو زبانه سه زبانه که خواستن بسازن بازم به همین واسه فان یه قطعه ای هست در کلیه سعدی به نام مثلثات مثلثات یعنی یه بیتش عربی است یه بیتش فارسی یه بیتش پهلوی و همینجور تا این به همین وزنه بازه یه قزل هم داره خاجه که امیدوارم بهش برسیم باز سه زبانه است و باز همینجوره یعنی به همین وزنه سبت سلما به صدقه ها فعادی و روحی کل یومن لی نگاه را برمن بیدل ببخشای و نی علا رقم الاعادی اینا پارسی و عربی امن انکرتنی ان اشق سلما عربی تاز اول آن روی نهکو بوادی وقتی معنی کنیم این خیلی ساده است تو از اول آن روی نهکو را بواید دیدن که همچون مد ببوتن دل و ایرا قریق الاشق توی بحر الودادی که همچون منت ببودن دل یک باره قریق اشق الان این دل به واتت خورد ناچار به واتت یعنی به وایدت باقیش هم روشنه وقرنه او بنی آنچت نشادی و غرنه یعنی وگرنه او بنی یعنی آن را میبینی آن چه نشادی یعنی شایسته تو نیست به پای ماشان قرامت من قرد یک بیروشتی از امادی پای ماشان یعنی سخت به پای ماشان قرامت میسپرم اگر یک بیروشی از من ببینی در حال غزل 429 چاپ مرمون خان باز هم به همین وزن مفایل و مفایل مفایل و بعد که زبان فارسی مستقر میشه و رسمیت پیدی میکنه تمام داستان‌های عاشقانه به این وزن بوده میشه قدیمترینش ویسرامین فخردین بعدش هم خصوصی نظامی و بعد هم همه داستانهایی که به دنبال خصوشی، این همه به این در این بحث گفته و اولین شاهنامه هم که سکروده شده که سه بیت متاسفانه در دسته شاهنامه مسعودی مروزی اونه هم به همین بحثه ولی اون روزا هنوز وزنات جا نیفتده بودید در کتاب آفرینش و تاریخ البدع و تاریخ مال متحر ابن طاهر مقدسی که آقای دوتو شفیعی ترجمه کرده به فارسی میگه که مردم یه کتابی دارن به نام شاهنامه خیلی عزیزش میدارن جلدش رو برا حساب کردن تلافوش میکنن چه میکنن چه میکنن تصویر شاهان توش هست و چه هست و چه است و بعد سه بیت ازش میاره دو بیت از اولش یه بیت از آخرش با تحریف و تحصیف بسیار زیاد واقعاً واقعا قابل کندن و فهمیدن نیست ولی بعد از این اون تحریف و ها رو بسرپینه کنیم به این صورت در میاد که نخستین گی تا آمد به شاهی به گیتی در گرفتش پیشگاهی چو سی سالی به گیتی پادشاه بود که فرمانش به هر جایی روا بود این دوبه تو از اول نرف کرده آخرش هم هست سپری شد زمان خسروانا چو کام پیش راندن در جهان باز به همین وزن ولی بعدها برای هماسه یه بحر دیگه بحر متقارب در آمد و اختصاص پیدا کرد و هم این بحر هزج مصدس مصدس مخصور و هم بحر متقارب متقارب مصمن مخصور یا محضوب اینا است که عرب در شعر خوب نداره یعنی اینا اوزان است که مطبوع طبع عرب نیست در حالی که نیمی واقعا نیمی از میراث فرنگی ما یا بیشتر میراث شعری مون به این دو و این دو وز رو مرحوم خانداری معتقده که اصلا از وزنای هجایی نه وزنای عروزی که کامل شده و بعد به صورت وزن عروزی مورد استفاده قرار هر حال وقتی میگن بیت پهلوی یا گل پهلوی سرود پهلوی مراد است که به زبان پهلوی یا به لحجه های محلی دیگه به این وزن سروده شده و همین در عرب اینا رو میگن فهلویات و یه دونش هم میگن فهلویه فهلویه و فهلویات اما چطور شده که این حرف میزدن اگر این فهلوی بوده چطور شده که ما که چنیدیم میشنبیم خیلی که زبون فهلوی چندی برای از اسلام مرد و چنین شده چنان شد پس چطور بوده که اینا حرف میزدن و میزنن جواب این است که یه زبان مکتوب داریم یه زبان گفتار زبان نوشتار به محض اینکه اون حکومت که پشتیبان اون زبان رفت اون زبان هم باش میره فردا فرض بفرمایید که بخواستم بگم که به دولت انگلیسی زبان بیاد ایرانو بگیریدام نه خیلی بیشتر عربی قد چیزش هست که آخونده بله یه دولت عربی زبون بیاد اونجا اقل دولت خودش به عربی نیمسه مردم کاری دارن باید به اون به عربی می و جواب بیدن خب در اون روزگاری که ادهه خیلی خیلی معدودی فقط در نوشتن می دونستن. یه دستشون کارمند دولت بودن یه دستشون هم آخون بودن آخوندا که مسلمون شدن کارمندهای دولت هم که دیگه زبون پهلوی رو به کار نمی بردن خط پهلوی و زبان نوشتار درسته بعد از سابه سال مرد اما یه ادهی به این زبون حرف می زدن سوادم نداشتن یعنی یه معلم داشتن اونم ننشون بودی که ازش در دو سالگی این زبون یاد می گرفتن و اینا هیچ زبون دیگه ولد نبودن اینا همینجوری اینا ادامه میدادن پدر بر پدر تا بعد ها یه وقت یه جوری بشه یه زبان فراگیر دیگری بیاد با قوت و قدرت دیشتری مثل پارسی دری که بعد زبان نرشدار بشه و کم کم اون زبون رو محو کنه ما تا قرن نهوم حافظ که ما قرن هشتمه تا قرار نهم من ردده پاش دارمم شاید بعدم هست یاعاعرفی از اتفاق شیرازی به نام شاهدایی این شاهدایی یک مصنوی داره باز و همین وزن مفایدون و مفاید و مفاید به نام کان ملاحت این به پهلوی 750 بهتم است تغییر این آقای عدید توصی که نمی رحمت خدا رفتن یا نه خدا رحمد شدهم مرحوم عدیب توسین رو در مجله دانشکلی عدویت تبریز چاپ کرد و ترجمه و تفسیرم کرد بحث آخرین نمونه پهلوی گفتاری که در قرن نهم خیلی دیره دیگه خیلی نزدیک به زمان ماست بوده الان هم ای بساکی در داعات دور افتاده دنباله این هست بله بله این است که میگه بلبل ز شاخ سر به گلبنگ پهلوی به سفرود پهلوی میخوان دوش دوش یعنی دیشب درس مقامات معنوی روشن فهمت قصسیش یعنی بعد ما مقامات معنوی میگه یعنی بیا آتش موسا نمود گل نمود یعنی نشون داد اینکه حالا ما نمودن رو به جای کردن به کار کار درستی نیست یعنی لغت رو از محصات اصلیت میندازیم نمودن یعنی نشون دادن به همه کس بنمودم خم عبرو که تو داری ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید میگه مقامات معنوی اینه یعنی بیا که آتش موسا رو نشون داد گل برای اینکه در قصه موسا میگویند که وقتی که موسا زنش دربش گرفت و ناراحت شد و در وادی عیمن در اون بیابان نگاه کردید یه سوی یه نوری میاد گفت خب شما اینجا باشین من برم از اون جایی که ظاهرا آتش هست جذبه ای بیارم یک قبصی بیارم هم جذبه و هم قبص لغت قرآنیست و همین دلیل تو حافظ مثلا آمده موسی اینجا به امید قبصی می آید و قبص کلمه اختباس از همونه یعنی گیروندن آتش خود از آتش دیگری اختباس کردن همینه دیگه به هر حال موسی میره وقتی میره میدونه که آتشی در کار نیست درخت سبزیه و این نور از اون درخت میاد بعدم خطاب میرسه بهش که کفشت تو تو در حضرت حق و بعدم در مناسب ترین موقعی به پیغمبری هم منسوب میشه ظن شونزه درویش که داره ناله میکنه این اومده دنبال آتش بعد گفت اساتو چی درسته نه. باید میگه که تحکیه میکنم بهش چیزا هم میزنم گوزفنده هم باش میرونم فواید دیگری هم داره مرحوم استاد ما میفرمود که انسان شرف مساحبت حضرت حق را پیدا کند و با او در برای فواید اصا حرف بزنه باید خطاب می‌رسن از حضرت ها زمین می‌ندازه و مار میشه، اجده‌ها میشه. بعد می‌ترسه حضرت میگه می‌گه نترس بگیرش بگیرش برو سرار فرعون رو قصه زن موسا و زایدن یا نزایدنش به کلی ناتمون می‌مونه یا اون مسئله میره جز دست دوبار به هر حال میگه گل که بارها گفتم گل سرخه این اون آتش موساست گل آتش موسا رو داد. اگه چشم باطن بین داشته باشی این که میگه آتشی از درخت سبز زبانه میکشید همینه دیگه یعنی بیا که آتش موسا نمود گل البته در زم حافظ اینجا به یه نقطه دیگری هم توجه داشته ذهنش گل کردن آتش خودش هم یعنی گرفتن و ولی اصلش اون یعنی بیا که آتش موسان و گل تا از درخت نکته توحید بشنید اینکه کسی گفته برگ درخان سبز در نظر گوش یا هر ورقی دفتریست معرفت به کردگار ای این چشم بینا میخواد سعدی در گفتانش میگه که فرق انسان و با جانورا میگه بهاءم این یعنی چهارپایان بهاءم به روینده افتاده خار چهار دستوان روی زمین تا همچون الف بر ها سوار میگه امتیازی که خدا به تو داده این است که میتونی آسمون نگاه کنی بیس گوا اصلا آسمون نمییدی بیت و این است که از درخت نطقه توحید شنیدنم چشم بینا میخواد درخت هست همه می هم میبینم ولی اونی که اونو ببینه کم. یعنی بیا که آتش موسی گل تا از درخت نطقه توحید بشنوید مرغان باق قافی سنجند و بزرگو و شیراز بربل زیاد تره من نمیدونم البته ولی تیرون خودمون رو میدونم که داره خیلی دوش طرف های شمرون و اینا گزاشوب و باق مقصود بک رو ما و م... م... فیابون مقصود بک رو که باق داشت و اینا بور بور خیلی بود و میشنید آدم سه مرغان باغ قافیه سند جند و وزدگوی تا خارج میخورد به های پهلگی ظاهرا مثل اینکه خیلی هم دوست داشتن این ا، محلی خوندن و که هنوزم هست. می‌بینیم که مثلا شجریان و دیگران اینا یه مقداری زمین این که شورای کلاسیکان هم خوندن، شرای محلی هم می‌خونن. این غزل‌های پهلوی اشاره است. تا، بله واله. خوش وقت بوریای گدایی و خواب آن. خوش آبا حال کسی که روی بوریای گدایی میخوابه و راحت میکره میخوابه قصه ای من کجا خوندم تو دو دوتا درویش بودن با هم میرفتن یکی 5 دینار بوداش یکی زور که میرفتن اون یکی سرش سرشیمزش میخوابید اون پولداره همچون میشه صوری نگاه میکرد و خامش رو پلن میشه دوباره میخوابید یکی میدار شد گفتش که چیه چه نمیخوابید؟ که حالا خیالم ناراحته سری که دارم این وقتی که بیاد سرمونو ببور و بیاد سرمونو بگیره خوبه خو من <تصیح> خوب آنان جای خود دارم بخواهی میشه کنم گرفت تو پاشدن رفتن چای اون نظیبی به انداختون راید که این نداره. آره راحت که بخواهیم تا این است که آدمی که بستگی داره به مال دنیا یکی از گرفتاریاش همی همینه که این ملک رو چکار کردن اون که چکار کردن اون همسایه چکار کردن ماشین رو حد دشتن نمیدن چکار کردن الاخر ولی آدمی که رو گوریای گدایی خواب ده خواب هم داره ایش نیست روزیه او رنگ رو خستروت هیچی گفت که یه قصه ای بولستان اینکه یه که مردو وصیت مرد و کرده بود یا رسم شهر این بود که اولین کسی که از در دروازه وارد میشه اینو ببرن پادشا بکنی یا به هر صورت دیگر این بابای گدایی که تمام عمرش گدایی کرده بود و لغمه بر لغمه اندوخته رغمه بر لغمه دوخته دو. میاد و میبرن می شخصه شامش کامیشون میمونه و بعد یکی از آشناهاش اتفاق میاد و گذر میکنه و میره و میری سراغشو که خب الحمدلالله بعد یک عمری گرفتاری و بعد وقتی اینا حالا دیگه بعضت خوبه الحمدلالله میبینم که چیزه سیو عزت داری و, داری و جلو پاد بلند میشم تعذیم میکنم تحکیم میکنم گفت جای تبریک نیست که جای تسلیته برای اینکه اون روز نانی داشتم امروز اندوه جهانی واقعا واقعاً این طوره چه مشکلترین مشکل‌ترین، شغلی که در دنیا وجود داره این لیاست جمهوری این بیتراست و همه این گرفتاری‌هایی که آوارش رو سر این بابا می‌ریزه اگه دقت کنی، هیچه اصلا مفته می‌یز طرفی هم نداره، این یه مش، <تصفح> یه مش احز کنم که یه مش آدمایی با هم رقابت دارن یه مش آدم های حقباز نمیدونن هی راستوریست ما میدارن و چیز میکنن و همه این خاکسترهش میباره رو سر این بابا این است که خب آدم چیز اینطور نیست و البته این نکتر من بگم که یه وقت فاموش نشه این حرف نباید چنین تعبیر بشه که پس همه همه کارشون رو بذارن کنار برم میگم بخوام یا مثل این گل مولا‌ها کفن رو بوشن را بیفتن که نمیشه کار دنیا نمیشه، ولی یه کار میشه اون این است که آدم تو بازار باشه، در دوکون باشه، تو اداره باشه، پشت میز وزارت باشه ولی دل وستگی به اینا ندشته بشه درش با خدا باشه. میگه من قلام و نظر آصف عهد هم ها صورت خارجی و سیرت درویشان بسه سیرت درویشان اینه که اگه امروز بهش گفتن بلندش رو اثر این مسنت بدونه هیچ تأسفی، بدونه هیچ ناراحتی بلندشی این اصل مفتل یعنی اصل اون تربیت اینه و الا ممکنه یک کسی باشه که همین یه دونه کتاب داشته باشه اما از دستگاه سلطنت اون پاتچاب بیشتر دل بستگی بینید یک کتاب داشته باشه این بدبخت خوشبخت بوریای گدایی و خواب هم کینهش نیست روزی اورنگ خسروبی جمشید جز حکایت جام از جهان من نبود جمشید خیلی آقایت هم داشته گفتن که زهاکیان گرفتن آوردن گذاشتن با عرض دونیمش کردن خیلی شبیه سرگودشش با سرگودش زکریه باید جمشیر جز حکایت جام از جهان نبود زنهار دل موند در اسباب جمعید نمیگه اصاب دنیا نداشته باشه چرا نداشته باشه داشته استفاده هم بکنه چرا نکنه ولی دل نباید ببنده دل جای خداست دل جای چیزیست که آدم با خودش میبره این قصه عجب چنو از بخت واشتون ما را به کشتیار به انفاس ایسدی انفاس ایسدی خاصیت که مورد زنده میکردیم یه قصه ما رو ببین که یار با انفاس ایسابی ما رو کشت چشمت به خانه مردم خراب کرد اشبه به معنی فریبه فقط این در شعن مردم ممکنه بگن اشبه ای کرد یا اشبه ای خرید یا اشبه یعنی فرید چشمت به خانه مردم خراف کرد مخموریت مباد در زمین میبینید که خمار نمیگه نمیگه خمار نباشی میگه مخمور نباشی برای که خمار به معنی خود اون در نه اون حالت مخموری نداشته باشی این مباد الفش الف دعاست مب و بوده مخفف شده شده مباد و باد یعنی انشالله که مخمولی نداشته بشی که خوش مست می روی اینجور مست که می روی. امیدوارم که پشتش مخمولی نداشته بشی دخان سال پرده که خوش بود باقی سر که این نورو چشم به جز از کشته ندرد این ظاهرا در اون روزگار ضرب المثل به دلیل اینکه من حالا یادداشت کردم یا تو ذهنم نیست ولی دو سه جای دیگه در همین عصر حافظ یا در آثار یه ذره قدیم‌تر عین همین مطلب رو که به پسرش گفت جز کشته نخواهید درود به نظرم تو صحیجم هست در اون سند بادنامه هم که من تحصیل کردم زیر چاپی در تهران اومدگارم در بیاد اون تو هم هست معلوم میشه که مسئله رایجی بودی در اون روزگار مردم خیلی میگفتن که فقط کشته خود چو بایدن میدرده اگر جو کاشتی مال سعدی است که جو کشته گندم نخواهی داری جو کاری گندم مردم داری گندم؟ از جو ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد ساقی یکی از وظیفه امدش این بوده در مجلس اصلا اینی که میذاشتن با شراب رو که هر که بیزراز خودش بخوره و این دستی کسی بوده این ساقی وظیفهش این بوده که مجلس رو به حال تعادل داره. اونی که عقب برستونش اونی که زیاد خورده یه خورد کم بشه بده اونی که میدونه اهل عربده است تا سرحد عربده که رسید جلوش رو نگه داره و خلاصه میره مجلس اون سکر یعنی باید اگر اگر در مجلسی ترتیبی چیزی رخ بده از چشم ساقی میبینه اوست که باید بدونه که به بده چقدر بده چجور بده و. اخلاق هرکس رو بشنو سبین به این دلیلی که میگه مگر ساقی وزیفه حافظ رو زیاده دا زیادتر داد زیادتر از گنجایشش زیادتر از اندازش داد کاشفته گشت تره دستار مفردی تره اون پیچی بوده که سر دستار میذاشتن دیگه خوده و بله به خصوص که قدیم کنیز های چینی رو که می آوردن اینا زریف مریف هم بودن و نازوی که باعث دادن بودن انواع کارا رو به اینا یاد میدادن و البته قیمت هاش رو مرتب می بالا ساز زدن، وقصیدن، ثابیدادی کردن شطرنج باخدن، در باخدن ارز کنن که حتی در مسائل علمی مباحثه کردن شهر بسایر مطالب از جمله هم و میامدم چرا مردم میکنسه باشه سرم میکنسه یعنی مولانا نه فکر میکنم کلا بعد معروف شده مولوی خیلی یعنی بله مولوی مولانا مولای من بعد. خب دفتون آقای سپنگ سایه ابرست و لب من نگوگیم چکنم چکنم اهل دلی خود تو بگو بوی اگرنگی از این نقش نمی آید فیز بوی اگرنگی از این نقش نمی آید بوی, بوی اگرنگی از این نقش نمی آید خیز. دلق آلوده صوفی به می ناو بشون سفله تب سفله تب از جهان بر کرمش تکیه مکن ای جهان دیده سباعت سف... سف... قدم است از... سپل مجو سپند بیا اینکم که حس بعد سوادت خراب ششون طب از جهان بر کرمش تکیه مکن ای جهان دیده سواد قدم. قدم. قدم. قدم از سپله مجو بووش بوخشای که بلبل به طوال می گوید حاجی تقصیر مفرماد گل توفیق بگو شکر اون را شکر اون را که دیگر باز رسیدی به بهار بیخ نیکی بنشان بنشان و ره تحقیق بدون. روی جانان طلبی آینه را قابل ساز دون که هرگز گل و ندمد زاهن و روح دون نصیحت کنمد بشنو و صد گنج ببر از در ایش درا از در ایش درا و بره ای مپون گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید آفرین بر نفست با که خوشست پردی بود بسیار نظر لگشم ساقیا سایه است و بحار و لب جوی من نگویم چه کنم. ار اهل دلی کد تو بدو. بوی یک رنگی از این نقش نمی آید. خیز دلق آلوده سوفی به می ناب بشود سفلتب است جهان بر کرمش تکم مکن ای جهان دیده ثبات قدم از سخله مجور گوش بک بو چای که گل گل به فغان میگوید خاج تفسیر مفرمان گل توفیق بگوید شکر آن را که دیگر باز رسیدی به بهار بیخ نیکی به نشان راه تحقیق به روی جانان طلبی آینه را قابل ساد زان که هرگز گل ندم نسری ساهن تو نصیحت کنمت بشن و صد گنج ببر اولی از در ایش در آب توفمی دره عیب مفروض. گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید آخرین بر نفس این با که خوش بردی هر وقت چیزی رو می بگه به در بگه بیوال کنه خودشون گفته یکی کسی را در چیز سکنه می گرفت که قزل بیشتر ارفانی است یعنی اصلا ارفانی نیست تو فلسفی یک تو ایفانی ساقی ها سایه عبرستو فهارو لبی جود خب میگه که من دیگه چی بگم من نگویم کن؟ هر اهل دلی خود تو بگوی باید بساتو برد و نشست و عشق کرد او یک رنگی از این نقش نمی آگر دلغ آلوده سوپی به مه ناب بشوی باز از مواردی که نشون میده که آقا سوپی نبودی باران که با مخالف باز میدید میگه بلند شو اینجا من بوی یک رنگی نمیشنوم دلغ سوپی رو به مه ناب بشوی تا یک رنگ بشه مراد از یک رنگ البته یعنی رو راست و از بی حقیقتی درگید بر حقیقت ظاهر و با تندگیدی بشید صفل تب جهان صفل صفالت یعنی پستی سفله یعنی آدم پست صفل تب از جهان بر تکیه مکنی بعد صفت بعدی که میرون اون چه قشنگه ای جهان دیده اول میگه جهان صفله تپه بعد میگه تو هم که جهانو دیدی که ای جهان دیده ثبات قدم از سفل مجور ثبات قدم یعنی استواری و پافشاری گوش بک چای میگه باید گوشت باز باشه و الا همیشه حفظ گوش چای که بل بل به فقان میگوید خواهجه تقصیر فرما گل توفیق بود تقصیر یعنی کوتاهی کردن قصور یعنی کوتاهی شدن فرش یه وقتی کاری رو آدم انجام نمیده ولی قصوره یعنی نمیخواسته انجام بده، یه چیزایی که نشده یه وقت نه خودش انجام نمیده، کوتاهی میکنه اون تفسیر میگه الان وقت داری، باهارم شدی گل بل داره میگه که کوتاهی نکن، برو در راه توفیق گل توفیق و بوی یعنی در راه توفیق قدم بزن. شکر آن را که دیگر باز رسیدی به بحار بیخ نیکی به نشان و راه تحقیل این شکر آن را رو خیلی حافظ به کار این شکر آن را که تو در اشترتی ای مرگ چمن و اسیران قفس مجده گلزار بیا شکر آن را که میان من او صلح افتاد بوریان راست کنان ساغر شوچه آمیزه دارم مرم قزینی بردشی نوشته که شوچه ایزد چون تو نسخه خلقهالی شوچه ایزد بوده باید این همه جا شوچه آنراست باید درست هم هست ولی چون نسخه من اینجور بود جرعت نکردم اینو دست بذارم ولی در چیزش در قلط آماش شوچه آنرا رو شکر آن را که میان من او افتاد، فوریان رست کنن ساغر شکران زدن شکر آن را که دگر باز رسید دیگر یعنی دوباره شکر آن را که دگر باز رسیدی به بهار بیخ نیکی به نشانو چون بهار وقت گل نشوندن و درخ نشوندنه یه درخت نیکی بنشون و راه تحقیق به جور تحقیق معنیش اونی که حالا ما میگیم که اینجا بهش میگن ریسرچ اون نیست محقق و تحقیق یعنی کسی که درباره عجایب خلقت و صنایع خدا و اینا تفکر میکنه و در حقیقت میشینه منتظر الطاف الهی در اون حالت مراقبه بر در دل نشستن او رو میگه محقق بهش سعدی میگه نه محقق و باید نه دانشمند چارپایی برای کتابی کن یا محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل یعنی محقق یعنی کسی که چشمش نظرش به سون الهی بازی و الا این این کسانی که مامیدیم، اون روز بهش نمیگفتن تحقیق شاید بله اصطلاح بوده برای کسانی که در برای سون ایلاهی و لفت ایلاهی و ناچیزی کردن سیر و سلوک کردن در کار تفکر برای سیر و سلوک. این در موضوع خاصی جستجونه میکرد روی جانان طلبی آینه را قابل ساز این،, این مسئله خیلی مهم سوپیه است که میگه که مسئله تجلیه میگه حقیقت خودش باید به تو جل بکنی تو هرچی تلاش بکنی نمیرسی بهش تنها کاری که میتونی بکنی این است که دل تو از قبار تعلق پاک کنی مثل آینه ای که اگه می‌خوای خوب تصویرش رو بده باید گرد و پاک روش رو پیزن وقتی که این آینه رو درست کردی، خودش حقیقت روش تجلیل میکنه. خیلی زیاد صد بار این در مزامین مختلف، در سوهرهای مختلف به کار رفته یکی از معروفترینشون بیت مولوناس آینه دانی چراقم ماز نیست سایم که زنگار از روخش ممتاز نیست روعت و زنگار از روخ رو او پاک کن بعد از آن نور را ادراه کن هم همون روی جانان طلبی آینه را خابه ساز دلتو کن حقیقت تجلی میکنه. برای اینکه که گر و نسرین که از آهن بیرون نمیاد که از آهن روی که گر و بیرون نمیاد باید خواه که مساعد خوب باشه تا بتونه این گل روشت کنه بید بید. دو نصیحت کنم از دشت نوستت گنج ببر تا عبد این برای همه کس است صحیح از در ایش دراو آقو ایش معنی زندگی است اصلا اصلا معنی خوشبزرمی نیست معیشت یعنی گذران زندگی از در عیش در یعنی زندگی کن یعنی برای زندگی ناراحتی نداشته باش هی hey استراو و هی hey دنبال این که برم چی رو کجا چه جور بکنم و پول فلان از کجا در بیارم این بازیا نه به هر چه زندگی به تو اجازه میده راضی باش همید. از در عیش در و به راه عیب مپو چشمتم از دیدن به مردم منصرف باشه برای اینکه یکی از بزرگترین گرفتاری این کار اینه که آدم از دیدن عیبای خودش منصرف باشه و هیچ کسی که بی عیب نیست اولین کسی که خوبه شما عیبش رو ببینید و اصلاح بکنید خودتونین و خودت گذاشتید مثل اینکه جبریل امینی و محسومی شروع کردیم اینکه حسن چه عب داره، حسین چه عب داره، اونیکی چطوره، اونیکی چطوره، این بچه این یکی دعبام که من اینه نمی‌کهمم واقعا اینه نمی‌کهمم که این مردمی که وقتی یکی بعدی از کسی میگه چهار تا میزنن روش میبرن تاویلی پرفت میدن میگه برای چی این کار برای اینکه اگر آدم بخواد رو شیرینم بکنه بهترینه که اگه خبر خوشی شنید داره بگه خانم زلطمون من دیشب نشسته بودم در یه محفلی آقای سفن میگه می خانم چه خانم خوبیه خانم شما خوش میگه هم طرف پوشش میاد هم بنده خودم شیرین کردم ولی خبر بدو میارم لزومی نداره من پیش بیفتم گفت لزومی نداره من پیش بیفتم گفت خبری که دانی دلی بیا زارت. تو بگذار. تا دیگری بیاره اما نمیدونم طبیعت بشر چطوره که این مرضو داره و هزار تا نیچی بگن از کسی راستش نیست که یکی تا این طرف بده یک کلمه بعد که بگن بوری برمیداریم میرسونه برمی خدا انشالله ما رو برکنار بده از این معالیه گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید ببینید این بو بردن و این طعی نصرا چقدر خوب آبوده گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید آفرین بر نفس اتباه که خوش بردی بوی خوب بو بردی یعنی خوب فهمی برش این که کمی گوی. او رو با اولزم میشه خوبه. ولی من جایی دیدم باهه قطیه. خونبه اولی غلطه دیگه. ایشانا میفهمه. خب، حال کنم که غزل مفصلی ازم چار سا با نه همه بازه خود بنده می کنم شما سلام. تا همه که آبی به حوست بنشینی ورنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی به خدایی که توی بنده بزیده او که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی ادب و شرم تو را خسرو و کرد آفرین بر تو که شایسته صد چندینی صبر بر جوه رقیبت چه کنم گر نکنم آشغان را نبود چاره به جز مسکینی عجب از لطف تو ای گل که نشینی با خار ظاهرا مصلحت وقت در آن می‌بینی گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست بی دلی بود نبود گر... از فج نبود بی بنده داشتم از رو حافظه می‌خوندن ذهن <تصفح> من بود بیدلی دلی بود گر نبود بی دینی یا از فج نبود بی دینی سخن بیغراز از بنده مخلص بشنو ای که منظور بزرگان حقیقت بینی هی هم که خرامی به تماشای چمن که تو خوشترز گل و تر از نسینی شیشبازی سرشگم نگری از چپ و راست اگر بر این منظر بینش نفسی بنشیمیم پارسا یه تو پاکیز دل پاکنهاد بهتران است که با مردم بعد ننشیمیم سیل این عشگربان سبر دل حافظ برد بلغت طاقتو یا مغلط عینی بینو تو بدین نازوکی و دلکشی ای ناز لائق ده حاج جلال الدین مثل همه غزل حافظ مثل بیشتر غزل حافظ خطاب به شخص معینی است این شخص معینم اینجا شاه شجاع یعنی این جوون اینا جوون اندک سال پری بوده ظاهرا خیلی مؤدب و مرتب و حسابیم بوده و گویا خاجه او رو با دیده که مسلحت نمیدونه این غزل رو ساخته به هر حال ما خیلی چیزی نمیدونیم یعنی نمیتونیم زیاد بارد جز بشیم ولی این چیزها از این غزل بر میاد میگه اگر برلب آبی و حوص نشستی فتمه نشسته ورنه یعنی اگه ننشستی هر فتنه ای که ببینی از خودت بدین در اینکه که فتنه برخواست هست به خدایی که توی بنده بگزیده او که بر این چاکر دینه کسی نگذین این قسم میده تو رو به اون خدا که تو بنده برگزیده او هستی کسی رو بر من مگزین. یعنی کسی رو بر من چاکر دیرینه تو هستم ترجیح ند به خدایی که تو ای بنده بازیده او که بر این چاکر دیرینه کسی نگزیم ادب و شرم تو را خسروه محروبیان کرد شرط خیلی مهم نیست اما عدد بوده هم شرمی ادب و شرم تو را حسروب محروبیان کرد، آفرین بر تو که شایسته صد چندین چندین مرکب است از چند و این چنان که چندان مرکب است از چند و آن این مثل این که توضیح و واضحات من میدم اما اگر دقت کنیم در حرف زدن خودمون که وقتی من سه دفعه میام آقای نوحو ببینم، بینم میگم آقا چند دفعه اومدم خدمت شما زیارت کن نکرد اگه هفت دفعه بیام میگم آقا چندین دفعه اومدم یعنی چندینو ما به معنی مقدار مقرار زیادتر از چند میگیم. دلیلش هم اینه که در عربی اونون علامت جمعه ما اینم خیال میکنیم که چندین جمع چند درست نیست چندین مرکب از چند است و این میگه ادب و شعر تو را خسرو مرویان کرد تو به واسطه ادب و شعر شدی آفرین بر تو که شایسته صد چندی یعنی شایستگی داری برای صد برابر این مرداری که الان هست صبر بر جوبر رقیبت چه کنم اگر نکنم مسرامال سعدی منطقه در صحبی هست صبر بر جور رقیبت چه کند گر نکند همه دانند که در صحبت گل خاری هست یه اون غزل معروف مشنوع دوست که غیر از تو مرا یاری هست یا به جز فکر تو در روز شب هم خاری هست گر که مرا با تو سر و کاری نیست در دیوار بواهی دهد کاری هست یه او این مصرا هست و افس که میاره به دلیل این است که اینا به قدری مشهوره که دیگه فکر یعنی تصرف تصرف تصاپور انتحال نمیشه دزدی شعر بهش میگن انتحال با هی و طی دو نوخته شعر منتحل یعنی شعری که دزدی شده است صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم رقیب رو هم با اینکه 10 دفعه گفتم بار دیگر هم میگم رقیب به معنی مراقب الان ما به معنی همکار و همچشمو کسی که با آدم داره بود اینا رو میگیم رقیب به معنی این مطلقا در سعدی حافظ به این معنی به کار نمی رقیب به معنی محافظ و مراقب یکی از بیتای حافظ هست میده که بران شمایل مطبوع هیچ ندبان گفت میرسیم بران شمایل مطبوع هیچ ندبان گفت جز اینقدر که رقیبان تندخو دارید رقیب تندخو اگه رقیب به معنیه مثلا کسی باشه که با این مسابقه داره اون تندخو باشه اصلا میبرتی ندارید در صورتی این بیت معنی پیدا می‌کنه که بگیم آها تو نوکرات و لالهاتی که تو سنگ دوروز هستن اخلاقشون بده و نمی‌ذارن حال آدم می‌گیرن تا میاد آدم نگاه کنه برام شمایل مطبوع هیچ نکن گفت جز قدر که رقیبان تند تنگ خو اینجا سر و جگر رقی بعد چه کنم گر نه رقی بعد یعنی مراقبت محافظت که عذیت می‌کنه دیگه من چاره ندارم روز سب عاشقان را نه چاره به جز مسکینی مسکینو اینجا حاجی یه ذره معنی اصلیش برده مسکین در اصل به معنی آدمی است که دخلش کفاف خرجش نکنه یعنی روز 100 تومان درآمد داشته باشه ولی روزی 150 تومان خرج بشه این مسکین و به این میشه از زکات از محل پول مالیات کمک کرد ولی اینجا خاجه معنی زیر دستی و به لای زیر کشیدن و اطاعت کردن و اینا آورده صبر و جور رقیبت چه کنم گر نکنم عاشقان را نبود چاره به جز مسکینی باز در اینجا یه حسرم هست میگه هیچ چاره هیچ ای ندارن جز مسکینی این تر میکنه با که بگن که چاره شم مسکینیه اگه یه چارهش مسکینیه ممکنه بگیم که یه چاره دیگه ای هم هست ولی وقتی بگه یه ای نیست جز مسکینی دیگه تحکید شده اینوش میگن هسره یعنی منحصر کردن و یه چیز عجب از لطفتو ای گل که نشینی با خار اتفاقا اینم باز دنباله همون بیت, بیت سعدی رو کندم صبت بر جور و چه کند گرم کند همه دانند که در صحبت گل خاری هست گل خار داره و فقط گل سرخ دیگه گلا چیزایی که ما امروز بشم دیم گل بزنگا خار ندارن گل ولی خار داره یا عجب از نطفه تو ای گل که نشینی با خار ظاهرا مسلحت وقت در آن می‌بینی. میگه من تردید نمی که تو یعنی این کسانی که با تو اصلا بدن ولی لابوت مسلحت میدونی حالا این کار بکنی گر امانت به سلامت ببرم باکی نست ایدلی سهل اگر از پی نبا و امانات اصطلاح قرآنیه و همون است که در قرآن آمده که ما رو به آسمان ها و زمین و بوها عرضه کردیم و هیچ کلونشون حمل نکردن بوده و ترسیدم ازش و انسان حمل کرد به دلیل اینکه انسان ظلوم و جهول بود ان اراสน الامانته على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفق منها وحملها الانسان انه كان الظلوم من جهول انسان داشت که سرته بود ظالم و, و جهول بود اون امانت رو کرد. اون امانت خلافت حق دو همونی که میگه که در آیه دیگری که خدا به ملائکه گفت که من میخوام یه جانشینی در زمین برای خودم بگذارم گفتم خدایا داری مخلوقی چیز میکنی که خون بریزه و فساد کنه و اینا محصول بشری خداوند فرمود که من یه چیزای میبنن که شما نمیتونی و او این است که امسان کشم و شهوت و صفات حیوانی داره و صفات ملکی هم داره برحال این خلافت حق رو میگن امانت در این اصطلاح. میگه اگر امانت رو به سلامت ببرم خودشو میگه طوری نیست یعنی طوری نباشه و از طوری نباشه که شایسته ی خلعت امانت نباشه اگر این طور باشه که من امانت رو بتونم درست ببرم دیگه اشکالی نیست بیدلی سهل اگر از پینه بود بیدینی اگر از پشت بی دیدی بیدینی نیاد بیدلی اشکالی نداره سخن بیغراز از بنده مخلص بشنون ای که منظور بزرگان حقیقت بینی حیف هم آید که خورامی به تماشای چمن که تو خوشترز گل و تازه تر از نسری روشنه اخلاص یعنی یکدلی مخلص یعنی یکدل میگه حرف میغرز و از بنده یکدل بشنو ای کسی که منظور نظر بزرگان حقیقتین هستی ولی میشه این طرف توجه بزرگانم بوده حیف هم که خرامی به تماشا چمن میگوان هیف هم تو بایی تماشا چمن قدم بزنی که تو از گلو تازه تر از دستشیم روشنه بیگه کنم که شیشه بازی یه سرش کم نگری از چپ راست گر بر این منظر بینش نفسی بنشین این شیشه بازی رو من نگاه کرده بودم سالها پیش پیشه و الان یادم رفت. در لغتنامه ده خدا شرحی راجع به این شیشه بازی هست یه نوعی از همین کارهای چیزی که می کنند مثلا تو چیشه چیزی بیزارن می رهستن از همین که در میارن ولی اونجا به دقیقت داده و اگر دوستان کسی لغتنامه داره لطف کنه اینو ببینه و دفعه بعد بیاره اگر هم ندارن من یادم یه دوست دیارم که دار لغت میگم که بیارم اگه یادم بیارن. به هر حال میگه که عشق من اگر بر این منظر بینش منظر یعنی نظرگاه محله محله نگاه کردم اگر در این منظر بینش یک نفس بنشینی شیشه بازی سرشک می‌بینیم. شیشه بازی که سرشکم نگری از چپ و گرد بر این منظر بینش نفسی بنشونی این بیت و استاد بیت ده و روزشته در فرانتز این جا یعنی در بعضی نسخه ها در کم نسخه ای هست پارسا چطور پاکیز دل پاکنهاد بهتران است که با مردم بد ننشونیم این چیزی نداره که من توضیح بدم فقط در مورد پارسا باید بگم که اون الف الف نسبت پارسیان رو چون دستگاه مذهب و که موبدان و اینا همه در پارس بودن بنابراین اهل فارس رو که میگفتن به معنی لوزهمان و معنی مؤمن و مقدس اینام گرفته و ولی کلمه پارسا هیچ ارتباط خاصی با دین یا مسیحای بودن نداره. با همون پارس چی هست؟ ولی پارسا به معنی متدیل به کسی که پرهیز میکنه از گناه. حافظ میگه که اگر تو روی نپوشی به دین لطافت و حسن دگر نبینی در پارس سعدیه اگر تو روی نپوشی به دین لطافت و دگر نبینی در پارس پارسایی این نشان که جایگاه پارساییان پارس. در ضمن اینجا یه لغت دیگه شبیه اینه بگم برای این اینم اگه نگم هیچ جایی دیگه نخواهید چنید اون کلمه ترساست ترسا میدون که یعنی مسیحی دهیانا آخونده مسیحی کفتوشینه به ره گذار دیدم زیباسنمی سفید اندام او سرب صفت همی خورامید شوی از عقب دوان خوددام خود دام. گفتم که فرنگیان چه گویند بر خانم فیش گفت مادام گفتم ز خدا بترس ترسا و در ره زاهدان من اهدام مادام تو گشت بهر ما دام دل در ره ظلف اوست مادام با. این ترسا به معنی مسیحی، جامعه شعر امال شیخ و رئیس غاجار، شاهزاده است که شاعر بود و دا اول مسجد تو بود. ترسا از همون کلمه ترسه، با الف فائلی، ترسا یعنی ترسنده، بلشه تو شده انی مسیحیه مساله مهمه ترسا ترجمه فارسی کلمه راهبه. راهب راهب مین یعنی ترسنده شاید معتقد بنم که اینا خدا ترس بودن اینا امثال اینا و عربی بهش بودن راهب راهب ترجمه شده فارسی ترسا صفت از مندار میکردن اونا میترسیدن <تصفح> نه،, نه نه نه خیلی نه خیل. جزیه میگرفت نه نه خیل. نه خیل. از راهی کما دید نه که او رو یافوزی رو و همه درش مشترک میزن این، مال هم ترجمه راهی؟ نه <تصفح> از <تصفح> چاید باشم حالا من الان یادم نیست علف مستری هست این باید معنی داره این علف اینجا پارسا همین یعنی آن پارسی پرسایی چطور پاکیزی دل پاکنه ها بهتره است که اون مردم باید من شونی خب خب سید این اشگرفان سبر دل حافظ برد بلغت طاقتو یعنی طاقت من تمام شد یکی از معانی رسیدن تمام شدن و طاقتم برسید یعنی تمام، طاقتم تمام طاقت. شد یعنی رسید بالق شدن یعنی رسیدن بچه که میگن بالغ شد یعنی رسید مثل میوه که میرسید بچه وقتی بالق میشه که تمام اندامهاش دیگه شروع کنن به کار آخرین اندامه که شروع میتونن بکار اندامه های جنسیه بزنون میگن بالغ شد یعنی دیگه هیچ دستگاه بیکاری در بزنش نیست. ولی طاقتم برسید رسید طاقتم یعنی طاقتم تمام شد به معنی تخم چشمی یا مقلب عینی یعنی ای تخم چشم من یعنی ای نور چشم من بینی گمام میکنم که از بینمت و تبایون و این جدایی یعنی هنوز از من جدا هستی چیزی شده اینه آقای طریب اون و آفستویون هم این پرش چیزی نسید داره ببینم این چی منی که جفنگ نگم نه <تصفيق> خیلی من باید ترجمه می کنم بباشر بله اقدر طاقته یعنی طاقت من فمان شد این درسته یا مغلطه این بینی یعنی ای چشم من از من دور شد. ای توخ چشم من از من دور شد رو بی بی سبر دل حافظ برد میگه که عشق سهل عشق سبر دل منو برد بنابراین چش دور شو از من که دیگه نباشه این عشق دیگه طاقت من تمام شد ای تخم چشم من از من دور شو. تو بدین ناز و دلکشی ای مایه ناز لایق بزگه خاج جلال الدینی اینجا فقط جلال الدین وزیر بسیار معروف شاه شجاعه، جلال الدین تورانشاه که بارها حافظ ازش صحبت کرده یه جا میگه که خوشم آمد که سهر, سهر خوصوه خاور میگفت با همه پادچهی بنده تورانشاه و اون روزه خلده بر این خلوت دربیشان است مایه محتشمی خدمه دربیشان است به نام جلال الدین تورانشاه من غلام و نظر آصف اهدم او صورت خاجدی و سیلت دربیشان است باز اشاره برویست یه جا دیگه میگه که چیز نکن تو نمیخواد دربیش بشی تو دم فقر ندانی زدن از دست مد منصد چی نه چیچی خاجدی و منصد پرانچاهی منصد ساخت جاهی الان قبلی خاجدی و منصد ساخت جاهی نه نه تورانشاهی هست نصند حاجگی و مجلس تورانشاهی نه حالا من این تورانشاه هم از این روح براتون تورانشاه حاجزایدین که از وزیران معروف شاه شجا که از سال 766 تا پایان عمر شاه شجا 786 20 سال وزیر و مورد اعتماد او آفس چند قازال با به نام او دارد و قطعه ای نیز در تاریخ وفات او شدید است یه تورانشای دیگه هم داریم تورانشای پسر قطبتین تهمتن از پاچهان جزیره هرمز، که سال 747 تا 779 سلطنت داشته و عدیب و فازد بود و کتابی به نام شاهنامه تعلیف کرد که نایابه و از این همه این تورانشان این مرد این به هر حال لایق وزده خاج جلال دینی مراد جواردین تورانشان خب اومدیم سر به از حال خیلی درجه اطولی به سید نو و رهرویی در سرزمینی همی گفتین معما باغرینی که ای صوفی شراب انگخ شود صاف که در شیشه بر آرد عربینی گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی خدا زن خرقه بیزار است صد بار که صد بوت باشدش در آستینی مروبت گر چه نامی بینشانه است نیازی عرضه کن بر نازنینی بینشانه است بی است نیاز. نیازی ارز کن بر نازنینی ثوابت باشدهی دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوش چینی در اونها تیره شد باشد که از غیب شراغی بر کند خلبت نشینی نه همت را امید سربلندی نه درمان دلی نه درد دینی اگر چه رسم خوبان تند خوییست چه باشد گر بسازد با غمینی ره میخانه بنما ما تا بپرسم معال حال خود از پیش بینی نه حافظ را حضور درس و خلوت نه دانشمند را الملیوینی حسن خیلی وزل خروز آقا رهروبی در سرزمینی همین گفتین مؤما باقرینی که ای سوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه برارت عربعینی گر انگشت سلیمانی نباشد چه خواست؟ یدهت ید نخش نگینی خوازان خرقه بیزار است صد بار که صد بود باشدش در آستین باز به صوفیه محبت <تصفح> گرچه نامی بینشانه است نیازی عرض کن بر <تصفح> باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوشچین در اونها تیره شد باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشین نه همت را آمید سربلندی نه درمان دلی نه درد دینی اگر چه رسم خوبان توند خوبیست چه باشد گرد بسازد با غمینی رحمه خانه بن ما تا بپرسم معال حال خود از پیش بینی نه حافظ راه و رو در درس و خلوت نه دانشمند را علم و یعنی اول اشاره است به چل نشستن در و صوفی وقتی سر می یکی از گرفتاری ها همینه که اگر شیخ یا پیر فکر کار مریدش باشه زحمتی که شیخ برای هر موریدی میکشه از خود موریده بیشتره یعنی وقتی این بابا آمد سرسه پرد گفت من میخوام مورید شما بشم و بیام درگیش بشم بعد باید ذکر بگیره و بعد چله بنشین. یعنی چهل روز باید جز عبادت کاری نکنه جز برای هوایج ضروری از اون جاش بیرون نیاد تا اونجایی که ممکنه بیدار بمونه تا هر حدی که ممکنه و این ذکر رو بگه چهر بود و پیر یا شیخ باید مراقب این باشن در تمام احباد یعنی پا به پای این باید بشینن و مواظبش باشن که این وقت رو طلب نکنه کار دیگه نکنه اگه کرد جذرشو بگیرن بیاننش به کار و خب یه شیخی که توی خانقا صد تمرید داره حالا فکر کنید که این است که کار خیلی مشکلی ولی به هر حال یکی از مراسمی که معتقدم که در عالم قیب رو به دل آدم باز میکنه و فتوحی به اسطلاح خودشون حاصل میشه. شه و همون است که سعدی در جایی داره که بود؟ یکی از درویشان سر به جای و مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستقرق گشته حالی که از آن حالت باز آمد گفتند از این بوستان که بودی ما را چه تخفه کرامت کردی؟ گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامانی پر کنم حدی اصحاب را چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامانم از دست برم این داستان چهل نشسته، و اینو تشبیح میکنه به شراب که ای بخواد صاف بشه باید یک چهل, یک چهل،, چهل روز در شیشه بمانه البته اینجا من یه بار گفتم اینا مطالب خیلی دقیقی هم هست که شاید کتاب هم پیدا نشه زیاد یه مه لعل داریم یه عقیقی داریم هر دو سرک منتها فرق دارید فرقش این است که وقتی شواب رو می اندازن زیادی زرات بسیار بسیار ریز درش هست که به حالات کلوید به حالات هموزم اون آب می مونه و تنشین نمیشه خیلی طول میچه تا تنشی میشه و وقتی خوم شراب میذارن مثلا بعد از پنجاه روز اینقدر سرش صاف صاف میشه مثل این شرابایی که حالا پشت مغازه ها می ولی برای اینکه که تا ته خوم اینطور بشه ماها و ماها باشه تا این ذرات ریز یواش یواش آهسته آهسته تنشیم بشه و اغلب این فرصت رو ندارم این هست که اون قسمت اول روی خمم میگیرن صاف سر خمم و اصطلاح صاف سر خمم اصطلاح حافظی میگیرن به عنوان میلعل گر تمعداری از آن جامو مرسح میلعل ای بسا خون که به نوک مجعت باید سبت این میلعل هیچ سراتی نیست، زیرش کدره شفاف نیست اون زرات هنو هست اون می رو می گن عقیقی مثل عقیق هم هم دوید دل... عقیق شفاف نیست توی اون قصیده ای... اولین قصیده فارسی که در دست داریم قصیده رودکی مادر می را بکرد باید قربان میگه که مادر میرابه بکرد باید قربان بچه او را گرفت و کرد به زندان بچه او را از او گرفت ندانی تاش نکوبین و خستزون نکشید جان جز که نباشد حلال رو بکردن بچه بچه خوچکس شیر مادر و پستان تا نخورد شیر هفت مهد تمامی از سر ارگی تابون آبان آنگه شاید روی دین و رهداد بچه به زندان تنگ و مادر قربان بعد بگه اینو میگیری و توی خم و خلاصه ادامه بعد میگه که چند از اون صخ این نهی رو رفتگر شما چند از اون صخ چون عقیق یمامی چند از اون لعل چون نگین بدخشان حالا البته فیال راحت کردن این همه معطلی لازم نداره دستگاه های گوریزه از مرکز سانتری توشه هست هم وقت شراب حاضر شد می ریزم کنون از اون باید ما یه لعنیت ولی اینجا این اشاره میگه که برای اینکه شراب صاف بشه باید یک اربعین چهر روز باید در شوشه بمینیم سوپی هم برای اینکه بتونه به کمال برسه لعاقل یک چله باید بنشیم ولی بلا فاصله بعدش میگه ذات میخواد قصه دیوی که جانشین سلیمان شد و اینا شنیده اید اگر هم شن خودتون انششاالله میخونید در داستان پیغمبران داستان بر داستانیه که انگشت انگشتری داشت سلیمان که حکش بر جن انس به چیزی اون انگشتری روان بود و رفت تطیر بکنه این انگشتری رو جای گذاشته بود طوری شده بود یه دیوی برمیدار رو در انگوشت خودش میکنه خود رو شک در میاره و میره میگن سلیمانه سلیمان و از وقت هم هرچی میگنید میگه میزنن ردش میکنن چون دیگه بسیده فهمی هم راش نبین اون دیر چه روز میمونه و بعد هم این به صورت موجزاستایی از دست و میحصود دریا و یه ماهی میگیرش بنابر اون قصه او. بعد سلیمان هم از بعد بختی میره باید دست ماهیگیر لبه توتونه یا لبه دریاد شروع میکنه کار ماهیگیری و اینا بعد که ماهیگیری میکردن ماهی میگیرن یه مقدار یک شمس از ازد سلیمان باشه میبره که بخوره یا بفروشه یا هرکاری بکنه پاره که میکنه میپس کم ماهی انگوشتری در میاره و میره دیو و چیز میکنه میگه اون انگشتری در انگشت سلیمانی است که اثر داره. اگر انگشت سلیمانی نباشه، نقش نگین چه خاصیتی داره؟ اگر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دارد نقش نگینی؟ خدازم خرده بیزار است صد بار که صد وقت باشد در آ ما می‌گیم که بط تفرستیم، بط تفرستیم تمام چیزایی که میفرستیم، ما همشون بود. یعنی عده‌ای هستن، عده‌ای زیادی که اگه یه بطی نداشته باشن اصلا خوابشون بره. حالا این بوت یا رهبر عظم تو دست، یا استالین کبیره یا نمی‌دونم پیر درویشه‌است، یا نمی‌دونم فلان شاعر معروفه، یا به هر حال انواع افتان باید کسانی هستن که خیلی مورید دارن ده هزار تا بیسی زار تا صد تا یک کسانی هستن که به دوست مورید اکتفا کردن و میشه سنی بروشه کم ولی به هر حال این کار بطه دیگه این بط پرستی همین آقا که آمد بط شد دیگه آقایی که تصویرش تو ماه ببینن آخه استاد دانشگاه به یه استاد دانشوهایت دیگه داشت میگفت من تصویر آوار تو ما آدم چه خواهد به یکی دیگه هم میگفتش که با لیزر نه ممکنه کارایی بکنم خدا آزان خرقه بیزار از صد بار که صد باشه باشدش در آستین، این بوت لازم نیست به اون صورت سنگی و چوبی و اون چیزی که قبلا میگفتن پاشه حالا امام زده است نمیدونم مزار عرفا و مشاری خیلی های زنده است اینا بط هم دیگه خدا آزان خرقه بیزار است صد بار که صد بط پاشدش در آستین پس دیگه وقت ما مثل گذشت اینا توضیح بره خید.